بخش هشتم. تا چشمم به ساعت بزرگ وسط فلک افتاد در کسری از ثانیه دستم آمد که فلکه دوم صادقه به طرز اسرارآمیزی همان میدان آریا شهر خودمان است خیلی قدیم ها وقتی بچه تر بودم یک بار خانوادیگی اینجا آمده بودیم خانه این نمیدونم کیه که من همین دورور آن وقتا خیالم بود که آریا شهر بالاهای شهر است نگو نیست همینجور که داشتیم از خیابان رد می شدیم از حسن پرسیدم کجا باید بریم؟ پاساژ طلا میدونم یعنی کجا می بشینیم با هم حرف بزنیم؟ چند بار پرسیدی از صبح؟ یکی دو بار تو دو بار پرسیدی عوضی؟ حرف حساب جواب ندارم از صبح ده بار ازش پرسیده بودم دوباره گفتم بینی و بین الله مجید نمیاد حسن. نه به قرآن مجید میخواست بیاد که اینجا نمی اومدیم میرفتیم خونه خودشون مطمئن؟ مجید بود تو برو نشین کیا هستن حالا؟ ایشکی منو منو تو سروشیم با لاله این صد بار من نبود دارد خان میکند یا نه ولی به هر حال اگر دوباره میخواستن اشایری داره هم جمع شوند خیلی خر تشریف داشتند نمیدانم از ورود من چقدری دستشان را میگرفت ولی حتماً آنقدری نبود که بخواهند به خاطرش هفته ای سه بار توی این کافی شاب آن کافی شاب ولیمه بدهند. حسن آن دست میدان ایستاد و دوباره آدرس را نگاه کرد. انگار چیزی دستگیرش نمیشد چون تا آنجا حداقل 160 بار باران ورقه را بالا و پایین کرده بود. بهش گفتم: میخوای بده به من؟ من قبلا اینجا اومدم، واردم. خونه همه فامیلمون اینجاست." باور نکرد ولی کاغذ را داد. روش نوشته بود میدان آزادی، فلکه دوفم صدقیه، چهار راه یکی مانده به آخر، بالاتر از روبروی بانک پارسیان، پاساش طلا. شما رو به خدا آدرس نوشتن رو میبینید؟ با پرس و واپرس خودمان من رو رساندیم از دور سروش را به آن موهای بلندش شناختم، تا من رو دید بدون هیچ دلیلی پرید توی بغلم. حتی اجازه نداد که اول بهش دست بدهم، بعد با خیال راحت کارش رو را بکند. جوری محکم فشارم می داد که فکر کردم ترسیده بخوام فرار کنم. برای همین برقی خودم رو شل کردم که حس نیت هم رو بهش ثابت کنم. اما ولکانو معامله نبود. دو تا ماچه آبدار خرکی ازم کرد و بعد دو دستی بازو هم رو گرفت و زل زد توی چشم هم. گفت چطوری رفیق؟ این همه ژانگولر بازی نداشت. گفتم معمولی هم. جواب اصلیش توی آستینم لی یک بارگی یادم آمد که همین چند دقیقه پیش توی مترو چقدر دلم از پشت برای حسن سوخته بود حرفی نزدم ولی اینکه بخواهم حرفی را که تا گلویم بالا آمده سر جایش برگردانم جدا اذیت هم عین همین ادار سر حسن درآورد فقط فرق کار این بود که توی بغل حسن جا خوش کرد کارش که تمام شد دوتا هم اضافه بر سازمان با کف دست توی کمرش کوید قایم نه خیلی آرام زد که کلاهشان روی هم نرود سروش گفت چطوری گلم؟ روبه را حسن گفت قربون تو برمه خوبم عزیزم همه چی خوبه؟ اوزه احوال خوب خوب خوب این هم هنرشان خواد بر سرها تا به هم میرسن اینه دو دوتا زن با هم خوشو میکنند کنند سروش و حسن گرم صحبت شدن ولی اثری از آثار لاله نبود توی جمعیت چشم دواندم که پیش بگردم ولی یادم آمد که من از کجا باید او را می شناختم؟ من از کجا باید می همش یک بار از دور سیاحتش کرده بودم. نمیشدم که یغه تک تک آدم ها رو بچسمم ازشان سه جلی بگیرم ببینم طرف لال شکیب هست یا نه. کفش داشتم ولی باز انگشتای پام داشت آرام آرام یخ میزد با آرنج به پلوی حسن زدم. حسن پام داره یخ میزنه به پا. خب برو تو پاساش باید با هم بریم سروش گفت آخه قرارمون جلوی دره حسن هم گفت آره ما که سردمون نیست تو برو اومده صداد میکنیم چاره نبود گفتم پس من میرم اگه اومد صدام کنین کسی جوابم رو نداد دوباره گفتم من رفتم بیچی به ایچ خری یا آدم سرشان توی کار خودشون بود توی پژ داشتم از پشت ها ملت را دید میزدم قلقله بود سگ صاحبش را نمی شناخت بیشتری کاری که ازشان سر می زد این بود که یا عین چی به هم می خوردن یا از این برگایی تبلیغاتی می و هنوز دو قدم نرفته ویل میکردند روی سجاف پیاده رو در شرایط خاص می شود از سر تقصیر کارت پخش کنها گذشت ولی اگر آدم خودش میداند که نمیخواهد چیزی را بخواند چرا باید زرتی قاپش بزند؟ هر چیز یا مفتی را که نباید گرفت؟ حاصل سلام سر رفته بود بیست دقیقه بیشتر بود که همانجور یک لنگ پا وایستده بودیم متوجه سروش شدم که داشت آن بیرون با موبایلش حرف میزد فوری دویدم بیرون که یک خبری چیزی بگیرم چی شد؟ کی بود؟ لاله بود؟ اومد یا نیومد؟ اصلا معلوم نشد از کی پرسیدم سروش گفت هاره خودش بود گفت تو راهه الان میرسه انگار که قرار بود توی خانه کپیده باشه میدونم تو راهه. میپرسیدی کجاست. گفت نزدیک های فلکه دوبوم الان است که پیداش بشه. همینجوری میاد میاد چند دقیقه دیگر هم معطل شدیم. معطلی برای بازاریاب یک چیز عادی است. یا یک ثانیه وقت ندارن پس کلهشان را بخارانن. یا توی خیابان خدا ول ول میچرخند. مراد این است که هیچکس تا حالا یک بازاریاب را در حالت عادی ندیده است. خیلی سرتم بود. گفتم بچه ها تا لاله بیاد نظرتون در مورد یک نوشیدنی چیه؟ سروش گفت نوشیدنی؟ رو چشم عباس جان؟ چی میخوری گلم؟ خواستم بگویم آ پرتقال سروش جان اما جانش زیادی سمیمی در میآمد از طرفی سروش هم اسمی نیست که بشود سر و تش آقا چسباند آقا سروش سروش آقا <تص> توی دهن نمیچرخد قیدش را زدم گفتم یه آب پرتقال باشه خوب میشه میخورم همین سوال رو با لحن تری از حسن پرسید حسن گفت نه داداش من چیزی میل ندارم نداری نه که نداری معلوم نبود نمیخورد که چه بشود سروش رفت و با یک آب و دو آب مدنی کوچک برگشت آب از این گازدارها بود که جدیدن دارن میزنن قبلا ها نبود زمستان بود و نوشیدنی آن هم به آن خنکی درست حسابی نمیچسبید ولی توقع داشی چه میگفتم نمی توانستم بگویم که دوستان نظرتون تو راجب سه پرس چلو کباب برگ زعفرونی فرد علا چیه خیلی دور از ادب بود دوم اصلا. معلومم نبود که دوباره همینطور آدم را عزت تپان کنند حسامم گفت با خوشمزه است بیداده بیداد حرف توش نیست یعنی دوست داری علاکشم که سافتاش دستم میانداخت توی این فاصله سروش هم رتب به لاله تلفن میکرد. او هم از آن طرف یک نفس میگفت که توی ترافیک گیر کرده و دارد به سرعت می آید حسن گفت بلش گفت سروش داره میاد دیگه اونش نکن راستش من هم با حسن هم عقیده بودم آدمی که دارد میآید دارد میآید حالا چه یک بار بهش تلفن کنی چه هشتاد بار فرقی نمیکنه اما از آدمی هم که سه نفر خرس گنده را توی آن آسوز سکش یک ساعت انترا منتر خودش میکند هر کاری برمیآید. با خودم گفتم که یارو هرکی هست باید آدم دم کلافتی باشد. چون وقتی هفت هشت نفری زورشان به من نچربیده بود، اغشان را آب کشیده بودند و این بابا را علم کرده بودند بلکه فرجی بشود. توی همین فکرهای قراوغاتی بودم که سروش دو مرتبه هیجانی شده احتمال دادم که دوباره بخواهد تخت سینه‌ام بپرد اما نپرید. به بفرما اومد لاله را گفت این شد یک چیزی لاله آمد یک دختر 27 ساله که نه چاغ بود نه لاغر که می شود هم چاق هم لاغر هم گفته شود یک مانتوی قرمز گلمنگلی عجق و عجق تنش بود با یک شال توری پرپری سفید که زورش عمرم پوشاندن آن کپ موی فرفری طلایی نمی رسید به قرآن مجید دفعه اول که توی خیابان دیدمش موهاش نه فرفری بود نه طلایی مشکی لخت برگلاقی بود شلوارش هم که صد بدتر از بقیه نسواستین بود یک کتانی قرمز هم به پا زده بود که ارواح خیکش میخواست با مانتوش ست بشود مخلص کلام این که روی هم رفته لباس آدمی‌زاد تنش نبود منظورم این است که لباسهایش جوری نبود که آدمی مثل من بتواند در برابرش تاب بیاورد نه ندید بدیدی چیزی باشم، ولی به هر حال هر کسی برای خودش مشکلاتی دارد. به ما که رسید گردنش را کچ کرد و با صدایی که به زور نازک شده بود گفت سلام، سلام، سلام به همه. من از آدمهایی که از من قد بلندترند و نازک شدن صدای خانم ها موقع احوال پرسی به یک اندازه مطرف برم. اما عجیب بود که صدای این دخترک اصلاً عذیتم نکرد. تازه جا به جا خیال شدم و جواب سلامش را خیلی گرم و عالی دادم. حسن و سروش هم خیلی معمولی باش خوش بش کردن. انگار نه انگار که طرف آن همه خوشگل است. می که دیر شد. جای گیر افتادم جریانش مفصله. شک ندارم اگر ده دقیقه زودتر رسیده بود به جای آسخاهی. پر رو پر رو می گفت. سلام بچه ها دیر که نکردم. دخترهایی که خوشگل و گوشترند. معمولا تا گند یک کاری بالا نیاید هیچی چی رو مفت کردن نمیگیرند. هیچ پسری هم بیشتر از یک حدی از دستشان دلخور نمی شود و همین مسئله هم هر روز دارد آنها را پرروتر می کند. یک کافی شاپ توی پاساژ بود که از قرار معلوم باید همانجا می رفتیم. داخل که شدیم از طرز برخورد همید، صاحب کافی شاپ گرفتم که اینها هزار بار تا حالا اینجا افتابی شدند قدرتی خدا به همه جای دنیا سرک کشیدند. هر جایی که فکرش رو بکنید آشنا دارند. شاپور کجا، آریا شهر کجا. سر میز همینجور لبخندهای بی‌مزه دیمی بود که تحویل هم می دادیم. اولش سروش و لاله با هم دیگر صحبت میکردند. حرفهایشان به نظر شخصی می رسید. من هم هرچه گوش خوابانده هم چیزی دستگیرم نشد. بعد لاله یک مرتبه رو به من کرد و گفت: عباس آقا هستین دیگه درسته؟ مثل که پرسیده باشد از من خوشتون میاد نه؟ گفتم بله ما چاکر شماییم. الان که فکر میکنم جوابی که بهش دادم مناسب کافی شاب نبود. آنجور جاها برای خودش حرف زدن به خصوصی میتنبند. لاده گفت. حسن از شما زیاد واسه ما گفته. دم به دقیقه تعریف شما رو میکنه. مثل چی داشت چاخان میکرد. انگار که من برای حسن تخم دو دوزرده کردم و خودم خبر ندارم. من اگر تعریفی بودم حسن نباید یک بار به خودم حرفی میزد؟ همین مادرم روی حساب مادر و پسری هم که باشد باید یک بار توی صورتم از من تعریف کرده باشد یا نه کاری که هیچ وقت خدا ازش سر نزده کم نیاوردم گفتم حسن آقا لطف دارن نبیدونین این ور اونور از شما چقدر تعریف میکنه هر جا میشین از همه چیتون میگه حسن از زیر میز پاش رو محکم روی پان فشار داد منظورش این بود که باید سر حرف رو عوض کنم کردم گفتم. ببخشید لاله خانم، شما دقیق چند سالته؟ یا حضرت فیل عجب حرفی زدم پسر سر تنش واماند چشماش گرد و گلوم به بیرون زد ولی چهارتانه نشد شده بود اینه هومان پیرزنه که توی مترو نشاندمش روی صندلی سری ادامه دادم یعنی میخواستم بدونم سن آدم برای ورود دقیقا چقدر باید باشه که مشکلی پیش نیاد آخر من الان بیست سالمه سروش فشنکی پرسید چند سالته؟ اصلا حل نکردم گفتم پیفده سال درست متوجه نشد دوباره گفتم دارم میرم تو 20 سال این سری متوجه شد لاله گفت اختلاف سنید با حسن چقدره؟ سه ماه اون بزرگتره خب مگه نمیبینی حسن وارد شده؟ چون این را با خنده شیطنت آمیزی میزی میزد احتمال دادم که نباید زیاد از دستم دماغ شده باشد حتی احتمال دادم که شاید از من خوشش هم آمده باشد ولی چیزی نبود که خیلی به روش حساب کرد برای همین بحث را کش ندادم گفتم حالا من چه کمکی از دستم برمیاد سرکار خانوم؟ سرکار خانوم. خیلی خوشش آمد ولی جوری تا کرد که انگار براش مهم نبوده باشد گفت به من چه کمکی میتونی بکنی یا به خودت؟ من سر پیاز بودم یا ته پیاز؟ من آن همه راه را نرفته بودم که به کسی کمک کرده باشم اگر من آنجا بودم فقط باسه خاطر حسن بود شاید اگر آن صحنه که از پشت دلم به حالش سوخت پیش نمی آمد من هم آن آنجا نبودم همین رو هم رکک لاله گفتم معلوم بود که از حرفم خوشش نیومده است لاله گفت یعنی اصلا برای خودت مهم نیست که بخوای و درست مثل حسن شروع کرد همه بدبخت های انسانیت را یکی یکی توی صورت آورد انگار که به زندگی من رو یک تنه از لجن خالص بیرون بکشه از هر دری هم حرف میزد از خریدن خانه توی پترپورت و ماشین و ویلای جاجرود که آن پسر هادی غلش را بهم داده بود بگیرید تا ازدواج موفق آنقدر با کشر و فش از موفقیت نهایی حرف میزد که قند توی دل آدم آب میشد. یک درصد هم پیش خودش احتمال نمیداد که من اهل مادیات نباشم یا اینکه شاید بخواهم روزی گم خودم رو در مسائل معنوی جستجو کنم به حدی بغل گوشم حرف زد که مجبور شدم از منویی که زیر شیشه میز جاسازی کرده بودند برای خودم یک بشقاب چیپس و پنیر سفارش بدهم. همید صاحب کافه پرسید معمولی باشه یا ویژه بدون اینکه یک لحظه فکر کنم گفتم ویژه چون در همه جای دنیا هر چیز ویژه از هر چیز معمولی خوش است. بقیه هم یکی یک آب مدنی برای خودشان سفارش دادند نمیدانم میخواستم من را شرمنده کنم یا اینکه این هم یک جور قانون بود ولی حسن بی غیرت حداقل باید بستنی یا پرتغالی چیزی سفارش میداد. نباید اجازه میداد سروش آن همه آب به کش ببندند. برای اینکه از قافله عقب نمانم من هم یک آب مدنی سفارش دادم. اینها که گفتم در کمتر از دو دقیقه اتفاق افتاد و لاله دوباره حرفش را پی گرفت. داشتم میگفتم. تو دوست نداری از این وضعیت نجات پیدا کنی؟ به همین اون آرزوهایی که منتظرن تا تو بهشون برسی دست پیدا کنی؟ ها؟ اگه بدت میاد اصلا کی بدش میاد؟ خود حسن هم برای همین وارد مجموعه شده خیلی هم دوست داره که تو هم توی مسیر کنارش باشی؟ برای چی؟ برای رسیدن به موفقیت؟ ببین چه من، چه سروش، چه حسن و حادی و بقیه بچه هایی که وارد این کار شدن، همه یه هدف داریم، همه میخوای موفق بشیم. هیچی از رسیدن به شرایط بهتر فرار نمیکنه مگر اینکه رسیدن به شرایط بهتر براش مسجل نشده باشه. هیچ از این جمله آخریش خوشم نیامد. جدا فکر می کرد که دارد با کی حرف می اگر کسی دوست دارد که اینجور کتابی حرف بزند اول باید از طرفش اجازه بگیرد یا حداقل سوال کند که یارو چیزی از این حرفها حالیش می شود یا نه من تو بخوام بفهمم مسجل یعنی چه دو جمله بعدی لاله رو از دست دادم. هیچ بعید هم نیست که توی همین دوسه جمله حرف ناجوری نثارم کرده باشد که من متوجهش نشده باشم اینجور حرف زدن آن هم بدون هماهنگی یک کار غیر اخلاقی است تازه کار به همینجا هم ختم نشد بعد از آن باز هم کلی سخنرانی کرد. همین طور هم یکی در میان قلم می کرد. اگر نخواهم حق را ناحق کنم باید بگویم نسبت به قیافه و سن سالش خیلی خوب حرف میزند همه جور چیزی میگفت دقیق دقیق یادم نمانده است ولی بیشتر داشت سنگ آرزوهای برباد رفته من را به سینه می‌زد. اما چون حسلم سر رفته بود دوباره حرفش را بریدم. ببخشید اگه باز هم حرفاتون ادامه داره من یه سیگار دود کنم. الان دیگه وقتشه. مثل روز برام روشن بود که جلون وامیستند ولی به هر حال من پیشنهادم را داده بودم با اینکه روی صحبتم با لاله بود سروش گفت حباس جان الان که بساط جلسه است گلم چند دقیقه دیگه میریم بیرون دو نخ با هم میکشیم. این کار دارد با بچه حرف میزند. اصلا بحث سیگار نبود من در تمام عمرم چه بعد از جلسه سیگار کشیدم که حالا بار دومم باشد چیپس و پنیر من آماده شد به فاصله کمی آبها را هم روی میز چیدند. خودم از همه جلوتر دست به کار شدم، اما چون هر لحظه ممکن بود خیال کنن که من برای سورچرانی آنجا هستم، با یک سوال هشمن نهشایی کار را پی گرفتم. پرسیدم: اگه اینطوری که میگین، پس چه تظبینی هست؟ بال درآورد آورد انگار سال‌های سال منتظر این لحظه بود. حتی ازم نپرسید که در مورد چی چه تظبینی هست. از سر شروع کرد و دوباره راجع به همه چیزهای مهم بازاریابی حرف زد. من هم اعتراضی نداشتم توانستم بدون اینکه که جرب توجه زیادی بکنم دخل چیپس و پنیرها را بیاورم لاله داشت تند و تند تضمین میداد حتی بدون اینکه که ضرورتی داشته باشد لنگ پلیس اینترنتی و دادگاه های بینال را هم کشید وسط گذاشتم خوب که شاین مهینش را چید به آرامی گفتم از کجا معلوم وای کارت بهش میزدی خونش در نمی آمد. دوباره چشماش گرد شد چون دهنش کف کرده بود مثل سری پیش نیمه باز نماند اما شانهش پایین افتاد. گفتم منظورم اینه که برای این حرفایی که میزنی مدرکی چیزی هست یا نه؟ سروش مثل دیوانه ها بر رو من را نگاه میکرد. از همون اول کاری هم دو دستی پایهی لیوان آب را چسبیده بود. انگار که میخواهند لیوان را به زور از چنگش در بیاورند و او نمیخواهد تسلیم بشود. آخرش هستن خب لاله هم داشت همین رو توضیح میداد دیگه گوش نمی کردیم مگه به غیر از حسن هیچ کس دیگری توی اونجا درست درست نمیدانست که من چه آدم بیشرفی هستم گفتم چرا گوش میکردم پس داشم چیکار میکردم؟ تو چرا داری شلوغش کنی حسن این مسائلیه که جدی جدی داره ذهن منو آزار میده کاری که در آن شرایط بیشتر به نفع لاله بود این بود که حرفم را باور کند و دوباره بالای منبر برود همین کار را هم کرد برای بار چندم حرفهایش را تکرار کرد اصلا یک پوشه چندتا ورق جینگیر مستان بیرون کشید و این بار از روی آنها توضیح داد من هم توی آن فاصله به سرعت مشغول چیپس و پنیر شدم چیپس و پنیر را جوری درست میکنن که اگر سرد شود به لعنت خدا نمیارزد از آن به بعد هم که صدا از سگ هر میآمد از من نه لام تا کام حرف نزدم لاله هم هر چی سوال ازم میکرد فقط سرم را میجمع بازاریاب‌ها روی یک سال عمل‌های گاه و بیگاه آدم حساب باز میکنند و وقتی کسی آنطور لالمانی بگیرد، نسخهشان پیچیده می‌شود. آخرین تکیه‌ای را که توی باشخا بانده بود برداشتم. این چیزها مثل آب معدنی و نوشابه نیست که اگر یک کمی ته ظرف باقی بماند بهتر باشد. اینقدر خون گرفتم که آخرش سروش به صدا درآمد. خب عباس جان، هر آبجکشنی، شنی چیزی داری بپرس. نمیدارم چه اصراری داشت به زبانه عجوج و معجوج حرف بزند. گفتم، نه دیگه، مسیر شدم، خیلی ممنون. حسن گفت، منظور سروش اینه که اگه سوال و ایرادی داری، بگو. گفتم، درباره چی؟ عجب گیری کرده بودن از دست من. لاله گفت، در مورد این حرفایی که زدیم، حرفی، سوالی؟ الان که نمیشه حرفی زد، باید روش فکر کرد. بلند شدم هر همان جور نشسته بودند اینقدر سیخکی ویس دادم که دست آخر یکی یکی جاکن شدند زیر رفتم رفتم تو کره سروش به نظر عصبی می رسید ولی انصافاً چیزی بهم به نگفت جالب اینجا بود که بیرون رفتنی هیچکس پولم هیچ کس رو حساب نکرد. دیگر کاملاً حتم داشتم که آنجا پاتوق همیشگیشان است و نه حتی به خاطر ندادن پولی یک آب معدننی ممکن است حسابی بزن بزن شود. تا دم در پاساش بی و عیس رفتم. خوش داشتم با خداحافظی خوش و خالی غال قضیه رو بکنم. من از اینکه با هر کسی جدا جدا دست بدهم و خداحافظی کنم جدا متنفرم. اصلا داشت خیلی آرام با سروش حرفهایی میزد. نمیدانم چرا دوباره اشقم کشید که نگاهی به لاله بیاندازم که متوجه شدم او پیش دستی کرده است. داشت لبخند زل زلزل نگاه هم میکرد. نگاه کردنش مثل آدم هایی بود که کسی را بخشید یا اینکه میخواهند پیشنهادی به آدم بدهند. منظورم پیشنهاد خاصی نیست بیشتر دارم در مورد یک احساس با شما صحبت می کنم. پسرهای جوانی که موبایلی چیزی برای خودشان دارند به دخترهایی که توی یک متری آدم آنطوری نگاه میکنند و خنده تحویل میدهند بی برو برگرد شماره دهند. یعنی شرایط جوری بود که اگر من آدم بی جنبه تری بودم هیچ بعید نبود که کار خرابی شود یا حتی پشیمانی به بار بیاید بالاخر خودش کار را فیصله داد یک قدم جلوتر آمد و تنگ گوشم گفت روی حرفا فکر کنم بس این کار زندگی خیلی ها رو عوض کرده داره چهره زمین رو تغییر میده به حق چیزایی نشنیده مثل یک فرمانده ارشد نظامی حرف میزد سری یک میلیون شرط میبندم خود هیتلر هم توی جنگ جهانی در مورد تغییر چهره زمین مثل این دخترک حرف نزده بود شک دارم که جوابی چیزی بهش دادم یا نه. تنها چیزی که یادم هست این بود که با دو تا خداحافظی زردری کار را تمام کردیم مخلص.